تعریف دوم تعریف دوم هیپنوتیسم هیپنوتیسم هنر و علم عبور از ذمیر خودآگاه یا عبور از کریتیکال فاکتور ذهن که بهتون خواهم گفت چیه و دسترسی به زمیر ناخودآگاهه خب وقتی من اینو میگم قطعا لازمه که یه اشاره‌ای به ساختار ذهن داشته باشم ذهن انسان و وجود انسان ذاتن به این شکل هست که اگه خیلی ساده بخوایم بهش نگاه کنیم فعلا یه بخش خداگاه داره یه بخش زمیر ناخداگاه داره و خیلی ساده دوباره بخوام بگم زمیر خداگاه این بخش ای که شما بش آگاهید همین حسی که الان بهش آگاه شما الان دقت کنید به چه چیزهای های آگاهید ممکنه به بگیرید معلوم صدای شما رو میشنوم و با این بخش خداگاه خیلی محدوده شاید مثلا پنج چیز ده چیز و شما حداکثر همزان بتونید بهش توجه کنید یه جورایی سه چیز حتی به صورت همزمان یه و از اون طرف بخش زمیر ناخودآگاه هست که میشه گفت هر چقدر ما به اون سمت ها میریم داریم به اون فرمان روای وجود شما و قدرت های اصلی نزدیکتر میشیم یعنی عددی که تخمین زده میشه این هست که بیش از 90 درصد قدرت وجود شما به زمیر ناخودآگاه مرتبطه و این زمیر خودآگاه در حد یه عدد تکرقمیه درصدی که قدرت داره واقعا خوب دقت کنید که به چه چیزهایی الان ناخودآگاهید مثال زبان قلبتون تنفستون اینا همه اتوماتیک انجام شما فکر نمی کنید متابولیسم بدنتون باورهاتون نمی دونم خاطرات گذشتتون همه اینها توی ناخودآگاه که مثل یه انبار میمونه ذخیره شده و این ناخودآگاه قدرت عجیب غریبی داره شما یاد بگیرید باش ارتباط برقرار کنید شما میتونید موجزه کنید شما میتونید وجودتون رو اصلا در یادم دیگه کنید کلا باورها ها نمیتونم احساساتی که دارید همه اینها درواش زمیر ناخداگاهه و برای دسترسی به زمیر ناخداگاه شما باید از زمیر خداگاه عبور کنید از کریتیکال فکتور که مثل یه نگهبان ذهنی میمونه باید عبور کنید من مثال میزنم یه سریال دیدید که میرید باشون حرف بزنید میخواهید مثلا قانعش کنید بعد اون آدم اصلا به شما توجه نمیکنه شما رو میگه برو بابا این که داره چرت و پرت میگه و علتش اینه که ذمیر خدآگاه اون فیلتر اولیه ذهنش اومده شما رو انداخته بیرون یعنی گفته به فرض محتوایی که این آدم داره به من میگه حرفی که داره میگه صحبتی که داره با من اونش حرف میزنه چیز به درد نخوریه با باورهای قبلی من سازگار نیست پس من اصلا بهش توجه نمیکنم و شما هم اول فیلتر میشه حرفتون اصلا نمیتونید قانعش کنید اون آدم رو و حتی وقتی شما میخواد خودتون رو مثلا هیپنوتیزم کنید که بیماریتون درمان بشه یه بیماری دارید میخواهید بهبود پیدا کنید سیستم ایمنیتون قوی بشه فرز وقتی این کارو میکنید یه یه صدای میاد و مثلا میگه که خب بابا این که من که درست نمیشم چون که دکتر بهم من گفت و هیچ خوب نمیشی و تا یه ماه دیگه میمیری و این صدایی که اومده مزاهم شده و مقاومت داره میکنه این زمیر خودآگاه یا شما به یه بچه‌ای میگید که فلان کارو نکن بعد اون از تو با خودش میگه که برو بابا من باز کار این میکنم اون صداه اون فیلتره که هی رد میکنه حرفای بقیه رو و نمیذاره اثرگذاری انجام شه به خوبی اون ضمیر خداگاه یا کریتیکال فاکتور ذهنه و در واقع هیپنوتیزم هنر عبور از اینه شما با تکنیک های میاید عبور میکنید از این مقاومته و هیپنوتیزم هنر تکید میکنه این هیپنوتیزم یه هنره یه مهارتی که واقعا هنریه پندمندانه است که شما بتونید از مقاومت ذهنی خودتون یا دیگران رد شید و خیلی ها مثلا میخوان ذهن ایشون عوض کنن خیلی ها میخوان برن مثلا تلاش بیشتری تو ذهنشون کنن ولی یه مقاومتی از تو است میگه حالا فردا میرم پس فردا میرم یا میگم بابا من که نمیتونم موفقشم. شم و هیبنوتیزم یعنی شما معفق شید از این مقاومته بپرید پرش کنید از کریتیکال فاکتور بگذارید و به قدرت همیختر وجودتون برسید و این قدرت هیبنوتیزمه پس این میشه یک تعریف دیگه در برای که خیلی هم براتون مفید خواهد بود